ای بابا چه باسطی بوده دادی چه شوهایی می انا بنه دادی میگم شما تو انقلاب خیلی فعال بودین نه؟ آره. اصلا ما آتش فشان بودیم که آتش غهره الهی را در دهان خاندان پادشاهی فرو کردیم ام. فعالیت که دیگه برای یک تایم دادی چاله دادی بولچال دادی چرا پس من فعلا. هیچ وقت هیچ عکسی از شما ندیدم توی تو های انقلاب دل بنده من اون موغه که هنوز عکس اخته نشده بود که اون اون موغه نقاشی می‌کرد. بابا ددی این همه عکس هست از این موغه خالی نبندید. گام می بینی همش نقاشی ده نمیخوای بفهمی تو. که عکس بود اون موغه. بابا پسر نادان. حزای رسمی گی خاطره تعریف خاطره؟ کن بابا. خاطره تعریف... کانی نداره ببین. یک بار یک مؤمنی اومده بود یک مشکل داشت خود خب خب. عبدالالله نمی‌تونست برای ما مطرحش کنه. این که ما مشکلش رو برای ما بکشه. نه. عادی بابا میگم ام... از حضورتون تو صحنه های انقلاب خاطره بگو بله. این چیه دیگه داری میگی آخه عجب آن از اون لحظ کردیم که شما همینجوری کلی گفتی خاطر هم... انقلاب که پسرم خوب همش خاطره بود دیگه ولو بله یکیشو بگو دیگه عجب بله عرض کنیم که انقلاب ما پسرم انفجار نور یکی ای دادی اینم که حرف بله. امام خمینیه با خاطره بگو ما رو بله بله. دادی ببین یه جمله مخواهی بگوین دلبندم بگو. شما میدانه یه گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدانه یه گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ نه میدانه یه دسته بره خط یه نفر برگرده یعنی چی؟ دادی چی میگی بابا می دانی... آجنس شیشه ای دیدی جدیده؟ بله. وتی کاریه دادای اخ اخ صارین نودن اخشان شیشه یعنی هم خودمون بود یالگای فیلم اجنسی شیشهاییه دیگه منو سیان نکن، اما شم مال جنگل رفتی به انقلاب غلاب که داره؟ ای نه دیگه. بله باشه دیگه دیگه مجبوریم خوب تعریف. باشه ببنی. بگو. خلاه تفریر رفتم ریانا شه اقفا خدا. دیدی ما رو بله ببین دل بندم ما در روح پیمای ها و دیفی مدیریت خب. شعری رو برخود داد. مدیریت جهادی بله. شدید بودیم مدیریت شعری نشدید بودیم دادی چی؟ ببین گفت... این شعرهای این غلاب خب. تولیدی دیگه ما این شعارها رو از سر خط تولید میگرفتیم میبردیم تحویل ته خط تولید میدادی دادی چی میگی تو شعارم مگه خط تولید داره بابا؟ فکر کردی مرا بابا فکر کردی انقلاب ما رو پیروز کرد علکی بودن معلومه که خط تولید داشتند دادی میشه توضیح بدی من نمیفهمم چیکار میکردی؟ این دادی نصف مامانی این طوری بود که یک شعر را سران نهضت تولید میکردند و تهvil مامی دادند من به خیلی سری تحویل روحی کنندگان میدادیم دادم. بر می دیگه. نمی موندی تو روحی مایه. یعنی؟ دکه، حضرت همون به ما گفته بود که همین هی بریم و بیایم. ترناک بودی و وقت سوپاک ما رو می گرفت انقلاب می خواستی پیچ موتوری انقلاب بودی شما. من تراکش بگیرم. موفق انقلاب بودیم. خسته رفتشی. خسته کردیم. ای... بیا بیا خستگی ما رو بابا بیا یکم مرا رو به مالن خستهیم و شاید تمام می شویم. بابا تو همچه دادی. بیا بیا بیا هر فرصتی استفاده میکنی برای اینکه که من به دیگه بمال بمال عجب... شهار شهادت هم افتخار مایه بمال باخد... ببینم بمال حرف نباشه دادی آخه کی پوله بما... این ماساژ رو به من میدی تو اه... پول نمیدیم خجالت بکش وظیفت رو انجام بده برو بابا نمیخوام اه... اه... من رانتام قطع شده پول میخوام دادی خدا اه... اینجا اینجا بله. باشه بایده. دیگه دارم میمالم بابا بجام پسر اه... صاف بله بله اینجا. بعضی خیلی هم کمرت خیلی اینجاها گرفتگی زیاد داره بایسته بایسته بس فکا